روزها و شبهای بعدی چه کشنده و تلخ بود. دیوارهای خانه روی قلبم فشار می آورد و تحمل خانه ای را که تویش بزرگ شده بودم نداشتم. از همه جای خانه بوی خانم جون می آمد اما خودش نبود. صدای پاهایش را می شنیدم. بوی عطر تسبیحش توی شامم میپیچید و چشم باز می کردم. ناباورانه خانه سیاه پوش را می دیدم منظره چشم ها و دست سرد خانم جون و آن شب تلخ از جلوی چشمم کنار می, می رفت مرگ خانم جون برای من توی هفت سالگی اولین تجربه دردناک زندگی بود زربه ای سخت بود و تحملش فراتر از توانایی روح ناز پرورد و نامرادی ندیده من مریض شدم مرزی که برای همیشه با من ماند یادآور از دست دادن خانم جون. سوزش مدام معده بیچاره ام می کرد و در عین حال به محض اینکه غذا میخوردم حالم به هم میخورد. روزها وضع جسمی فرسوده ام می کرد و شبها وهم و کابوس و خواب آشفته. حال وحشتی که همیشه توی تاریکی و تنهایی به من دست میداد، حالا شدیدتر شده بود. از تاریکی و خانه خودمان میترسیدم و این ترس رفته رفته چنان بر من غالب میشد که خواب را از چشمم میگرفت و حتی پناه بردن به محمد هم آرامم نمیکرد و از وحشتم کاست. وقتی هم که از فرط ضعف و خستگی تقریباً بیهوش میشدم، مدام خوابهای عجیب و غریب و کابوس می دیدم و در حالی که خیس عرق و قرق استراب بودم با صدای محمد بیدار می شدم و به آغوشش پناه می و دوباره گریه بود و گریه چه روزها و شبهای سیاه و دیرگذری بود انگار زمان متوقف شده بود و من هرچه میگذشت گذشت حالم بدتر می شد حال به هم خوردن ها و بی هم با اسم شد اعصابم فرسوده تر نمیدانم چند روز گذشته بود که حس کردم نگاهها طوری دیگر شده. از حرف دو پهلوی اطرافیان سردر در و همینطور از عصبانیت و اخمهای درهم محمد که به نظر میآمد انگار به او توهین کرده اند. ولی آنقدر در خودم غرق بودم که حوصله دقیق شدن در دیگران را نداشتم تا اینکه یک روز بالاخره با اصرار مرا همراه محمد و فاطمه خانوم فرستادند دکتر حتی حوصله جواب دادن به سوال های دکتر را هم نداشتم این بود که وقتی دکتر پرسید متاهل هستید یا مجرد محمد به جای من جواب داد متعهل. حامله نیست؟ محمد محکم و قاطع گفت نه فاطمه خانم با موله گفت محمد جان، حال شاید؟ محمد حرفش را قطع کرد و گفت گفتم که نه من که ما تمورده بود نگاه ناباورم از دکتر به محمد و برعکس خیره میشد. حتی مطرح کردن این سوال هم برایم عجیب بود. ما که هنوز ازدواج نکرده بودیم. دکتر دوباره رو به من پرسید. تاریخ آخرین عادت ماهانه. سرخی شرم تا بناگوشم را قرمز کرد. در ظاهر زنی شوهردار بودم و این موضوعی عادی بود. ولی در باطن هنوز دختری بودم، که از طرح این سوال از طرف مردی غریبه، گرچه دکتر باشد، شرمی بینهایت احساس می کردم. نگاهی قرق خجالت به محمد کردم و با سر زیر انداخته گفتم هفته روز پیش دکتر رو به محمد گفت هفته روز زمان کمی نیست. حتی اگه درصد کمی هم احتمال داشته باشه، باید مطمئن بشیم. شما چطور انقدر با اطمینان میگید نه؟ بهتر ایشون آزمایش بدن. چون اگه اشتباه کرده باشین ممکنه داروهای تجویزی براشون ضرر داشته باشه. حیران به محمد نگاه کردم و نگاهم به چشمهای عصبیش افتاد. دکتر که از حال ما تعجب کرده بود از فاطمه خانم نسبتش را با پرسید و خواهش کرد چند لحظه بیرون باشد. و بعد دوباره از محمد پرسید که مشکل چیست وقتی محمد با دکتر صحبت می کرد دلم می خواست زمین دهن باز کند و مرا ببرد. هم از خجالت جلوی دکتر و هم از اینکه تازه می فهمیدم دلیل نگاه های دیگران و ناراحتی محمد چه بوده است یعنی واقعا آنها فکر کرده بودند من حامله هم. من هم مثل محمد بهم به برخورده بود از این فکر که توی ذهن دیگران درباره ما چه ها گذشته بود هم خجالت میکشیدم هم تعجب میکردم. مگر خودشان قرار نگذاشته بودند و با ما شرط نکرده بودند. پس این حرفها چه معنی داشت؟ داشت؟بیاعتباری ما بود یا حرف خودشان؟ به هر حال دکتر تشخیص داد که احتمالا شوک عصبی این اثر را روی سیستم عصبی معده گذاشته. و اختلال ایجاد کرده و سوزش زیاد معده هم به علت ترشوه بیش از حد معمول اسید معده است و به دلیل حالت عصبی که دارم معدهام هم غذا را قبول می کند و توضیح داد هر بدنی در مقابل اعصاب تحت فشار یک جور واکنش نشان می دهد و به همین دلیل هم احتمالا دستگاه گوارشم در مقابل تنش های عصبی دچار اختلال شده که به مرور بهبود پیدا می کند و برایم قرص و شربت تجویز کرد آن روز فکرش را هم نمی کردم که این بیماری برای همیشه با من بماند شب که دوباره به یاد حرف دکتر افتادم از محمد پرسیدم پس تو به خاطر اینکه فهمیده بودی ما در اینو چه فکری کردن ناراحت شده بودی؟ آرام پرسید کدوم فکر؟ خنده بود جلوی محمد هم خجالت میکشیدم اسم حامل بودن را بیاورم. گفتم همونی که امروز دکتر گفت دیگه لبخندی زد و گفت مگه تو خودت نفهمیده بودی؟ ساده و راحت گفتم نه، فکر کردم به خاطر خودم نگرانه. نیم خیس شد و گفت یعنی نفهمیده بودی منظورشون از حرفوی دو پهلوی که میزنن چیه؟ نه، اصلا فکرش رو هم نکردم. سرش را تکان داد و با لبخندی شیرین گفت. خدایا، زن ما رو ببین. خب عزیز من اینکه دیگه فکر رو تعمل نمیخواست. یه چیز واضح بود. آخه منو تو که نتوانستم ادامه دهم و ساکت شدم. محمد در حالی که دراز میکشید گفت: «میدونم ولی از قرار اونا جور دیگه فکر کرده بودم. بعدها که محمد را از دست دادم همیشه در نهان حسرت میخوردم که کاش همون طور بود که دیگران فکر کرده بودند و من از دستش نداده بودم. روزهای ازای خانم جون گذشت. ولی ماتم واقعی بعد از مراسم توی خانه خالی ما بود که تمامی نداشت. جای خالی خانم جون، خاطرهایش و صدای پاهایش و یاد حرفهایش توی گوش دلمان می پیچید و قصه را بیش از پیش با دل و جانمان آشنا می کرد. من که ترسوتر از قبل شده بودم، هرچه می حالم به جای بهتر شدن بدتر می شد. از خانه من و شب میترسیدم وحشتی که بر وجودم غالب شده بود دست بردار نبود برخلاف انتظار همه و حتی خودم که گمان میکردم با گذشت زمان رفته رفته همه چیز عادی می شود و به حال اول برمیگردد روز به روز حالم بدتر میشد آخر سر کارم باز به دکتر کشید و برخلاف میل مادر و محمد مجبور شدم آرام بخش مصرف کنم. دکتر گفت که اگر ممکن باشد و محیط زندگیام را عوض کنند در بهبود حالم موثر خواهد بود. این بود که آقا جون که انگار بعد از خانم جون خودش هم پیه ای برای فرار میگشت تصمیم به عوض کردن خانه گرفت. در ذهن هیچ کس نمیگنجید و قابل باور نبود که آقا جون حاضر شود از آن خانه دل بکند. ولی او گفت که چشمش بر نمی دارد آن خانه را بدون خانم جون ببیند. همه فکر میکردیم این تصمیم او گذرا و از روی تعثر است و بعد از مدتی پشیمان خواهد شد. اما خیلی زود یکی از همکارهای آقا جون طالب خانه شد. و در مدتی کمتر از چهار ماه همونطور که زندگی من بعد از خانم جون رنگ و بویش عوض شده بود خانه من هم عوض شد. این تغییر و تحول آنقدر سریع اتفاق افتاد که حتی فرصت نشد در موردش درست فکر کنیم. چقدر دلکندن از آن خانه که یادگار تمام ایام خوش بچگیم بود بوی خانم جونم را میداد و یادآور تمام روزهای زندگیام بود؟ یادآور دوستیم با زری و ازدواجم با محمد و تمام روزهای خوش دیگری که در این خانه و در کنار خانم جون دیده بودم برایم سخت بود. ولی این دوری با همه تلخیش در بهبود حال من خیلی موثر بود. در مدتی بسیار کوتاه هم خانم جونم و هم خانه قشنگی را که معوای خوشبختی و آرامش بود از دست دادم. و وارد مرحله دیگر از زندگی شدم دوره تازه که حالا یا تقدیر یا بی من باعث شد دیگر هیچ وقت رنگ آن آرامش خیال و آسودگی گذشته را نبینم زندگیم رودی شد در مسیری ناشناس که برای روح خام و بیخیال من نامعنوس و ناشناخته بود و مجبور شدم تاوان ناپختگی و خامی را به بهای هشت سال از بهترین سالهای عمرم و از دست دادن کسی بپردازم پردازم که مهرش با تار و پود وجودم عجین شده بود